را از دو گیتی براورده هند. به چندین میانجی بپرورده نخستین فطرت پسین شمار توی خیشتن را به بازی مدار. مردم خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر سلام از میکنم درود میفرستم و آفرین به شما میگویم مردم خوب ایران انشالله خوش و سلامت و خوب باشید استاد فریدون جنیدی در استودیو برنامه هستن در خدمه شون هستنیم سلام و درود در شما استاد درود بر شما و پردندان ایران من میخواستم یه چیزی بگم حالا در مورد شهر صحبت بفرانداد یه دارم. در مورد خود. قصه ای امشب این از گفتار فردوسیس در دیباچه شاهنامه نامه دیباچه اصولا معنیش روشن نیست بر ایرانیان امروز این از اشیر دیپ پهلوی گرفته شده این یعنی نویشتم از واژه دیپ دیپیر گرفته شده یعنی نویشنده که در پرس شد دبیر از همین دیپ دیپیرستان و دبستان ساخته شد در که نویسندگی میاموزند و از همین دیپ دفتر ساخته شد و دیوان دفت دیپه تر علامات فایلساز در زبان عبستویی که در پلوی تر و در فارسی در میشه این فزمن دیباچه یعنی نوشته کتا دی پیچک بوده پسمنده تسقیر و تحبیبه مثل دوشی چک یعنی دوش دوشیزه یعنی دوست داشتنی کچولو کنه چک یعنی معشوق کوچولو که لقب دختران ایرانی باشه و همچنی دی یعنی نوشته کوتاه یعنی که بر سر کتاب ها مزوم می نوشتن کم کم تبیش شد به دیباچه و در دیباچه یه شاهنامه این دویت خیلی شگفت اومده و مفهومش اینه که پس از میان های فراوان که خاک و باد و آب و آتش بود یعنی زمین رو تشکیل میداد و پس از اون میان های دیگر مثل گیاهان و جانوران انواع و جانوران که جان رو تشکیل دادند بر جهان و حرکت رو پس از اون انسان پدیدار شد به انسان در حقیقت نتیجه است که در فطرت نخستین بوده یعنی خداوند در آغاز میخواست که آفرینش رو به این نقطه و به این سرانجام برسونه اینکه نخستین فطرت پسین شما از در, در شمار آخرین هستی تو ای انسان ولی مقصود آفرینش خداوند در آغاز تو بودی. خودتو به بازی نگیر تو برترین دهشی از آن هستی و امروز معلوم شده که در مغز انسان چارده میلیارد نوران حساس و متفکر هست ده هزار برابر برترین های جهان نیرو در مغز ما هست اینا خداوند به ودیه گذاشته که به مرور از اون زمانی که قارنشینی بود و برف و یخ بود اینا کم کم کم کم مغز رو ما کردیم با دانش و حالا امروز بیشتر میتونیم ازش بهره بگیریم تا روزی که خداوند تقدیر کرده که به کجا خواهد استید که از این کامپیوتر بزرگ شگفت آفرمش ما بهره بگیریم برای بر حقیقت روایی جان در جهان اون الان در نظر ما نمیاد یعنی بسیار مپند و بسیارم شگفت انگیزه این همه کهکشان و این همه بر حقیقت سیاه چالو و این همه آسمان و, این همه سلول و کیو اتمو نوترونو نوترون و اینا همه از بزرگ آفرینش که بشر در نقطه پایانی اون بوده. خداوند اینطور خواسته که ای بشر ای انسان خودت به بازی نگیر تو نتیجه آفرینش خداوند هستی. بله. و عرض میکنم که سوال من این بود البته موضوع برنامه یعنی قصه امشب برنامه ادامه قصه من از کردم به استاد که ادامه نبرد خوشنواز و پیروز هست استاد گفتن نه پیروز و خوشنواز هست برای بله چون این جنگ رو پیروز برنگیخت از روی نامردمی آدوشا ایران بود از... او بله او بد کرد یعنی در حقیقت وقتی که بیاد بیارید در زمان گور وقتی که اونها حمله کردن به ایران و بعد بهرام گور مار شکستاد یک میلی یعنی یک منوری از گچ کنار جهون که اون زمان همزمان میریخته دریا مازندران برآوردهند که کسی بدون اجازه شاهنشاه ایران دیگه نمیتونه بیاد اینجا حالا پیروز اینو شکست این عهد رو شکست به با خوشنواز بجنگه به خوشموزم هم همینا رو در نامه خودش اشاره کرد که تو اگر این کار رو انجام بدی عهد شاهان رو شکستی و من تو رو یزدان پرست نمیخونم بنابراین این کم اتفاق افتاده در تاریخ ایران که ایرانیان بخوان برن بیرون به جای تجاوز کنن خب غیر از دوری ساسانیان که این کار میشد یکیشم همینجاست که هنوز به قول معروف مراکب پیمان برانگور خوشک نشده و هنوز اون میلی سرجاه هست ولی این فرزند برانگور بخواد بره و عهد تبرش رو از ببره به این دلیله باد بگیم جنگ پیروز و خوشنواز نه خوشنواز و پیروز و خالا من تو جایی مثلا ما میبینیم بازم میگن می که نبرد رستم و اسفندیار این تقدم و تاخر باز اینجا نه نه این نویسندگان کردم باید اونجا بگیم نورد رستم اسفندیار و رستم, رستم. یا مثلا رستم و سخرا سخرا و رستم سهراب و رستم اون نمی‌شناسن میگن که اینجا چیزی ننوشته من خودم به شما گفتم بله بله بله نه من... فهم... خب این خیلی مهمه به نظر من شاید رشته جزئی باشم اما خیلی مهم بدانیم که چه کسی شروع کرد این بله. جنگ رو بله. اد میکنم پیامک های شما که رسیده و تلفن های شما دوستان میگن آماده است یعنی دارن میزنن زنگ میزنن ارتباطات بچه ها هستن با تلفون های 222-485 یه خودم به خودم میگم 222-485 222-588-2-0 222-588-2-0 و شماره پیامه که 3,558 3,558 البته پایگاه اطلاع رسانی ما آماده هستش و شما میتونید برنامه های گذشته پنجره های روبه محتاب رو بشنوید در پایگاه اطلاع رسانی ما به ویژه برنامه هایی که استاد فریدون جنیدی خدودا یک سال و هست هشت ماه هستش میتونید بشنوید اتا یه تاریخی به بعد هستش شاید قبل ترکار نباشه میتونید بشنوید www.radiofarhang.ir هست میتونید از این طریق بشنوید گفتم هم. من بودا با دوابتونیم بازم صحبت گیم چون ما تو پیامکاتون هم هست که ما نمیتونیم دانلود کنیم من نمیدونم یه چی کاری باید بکنی، یه چیزی باید بگیریم یه نرمفصاری میخواد مثل که بتونید دانلود بکنید خب ایتون میتونم از باید پایگاه بنیاد نیشابور بگیرم خوش همه رو گرفتم بلی یعنی از رادیو فرحان جلو افتادم خب بس خوبه و حالا آدرس به سلال پایگاه اطلاع رسانی بنیاد نشابور مرز میکنم www.boniad خط تیر نشابور .ir از این طریق هم میتونید بگیم و عرض می‌کنم به عزیزی که خارج از کشور هستن فارسی زبانانی که دوست دارن برنامه‌های رادیو فرهنگ رو بشنون از طریق ماهواره‌ی است. و نیل‌سات میتونن اون بخش رادیو ها بگردن نام زیبای رادیو فرهنگ رو پیدا بکنند و دو برنامه برنامه‌های رادیو فرهنگ و برنامه زیبای ما نام برنامه زیبای ما رو پیدا بکنن رو نیمه ماهتاب. ماهی شب پنجره رو باز می‌کنیم به زیبایی‌های شاهنامه با استاد فریدون نکونی So <laughs> از آن من دوست بیت از داستان پیشین رو میخوام که پیوندش با داستان امشب بگذار بشه. ام، نه باشی تو این جنگ پیروزگر خوش نواز برای پیروز منسه. نه نیابی تو از اختلاف نیک بر از این پس نخواهم فرستاد کس بدین این جنگ یا از دون مرا یار باش. فرستاده را گفت چندین سخون نگوید جهان دیده مرد که هون. گر از چاچ یک پین حد رود به نوک سنانش فرستم رود. فرستادا آمد بر خوشنباز فراوان سخون گفت با او به راز که نزدیک پیروز ترس خدای ندیدم، نبودش کسی رهنوهای. همه شورش و جنگ جوید همی به فرمان یزدان نپوید همی چو بشنید زو این سخون خوشنواز به یزدان پناهید و بردش نماز چونین گفت که داور داد و پاک توی آفریننده هور و خاک تو دانی که پیروز, پیروز بیدادگر ز بهرام برتر ندارد هنر پی او روی زمین یعنی پی او ز روی زمین برگسل. منی روش بادا، من دانش، مه دل به گرد سپه پر یکی کنده کرد، سرش را بپوشید و آکنده کرد برا اومد هر دو سپه بوغ و کوس، هوا شد زگرد سپاه آب آبنوس. چون از کنده شد خوشنواز، همی گفت با داور پاک راز اوزان رو چون باد پیروز همی تاخت با خارمای سپاه، چه آمد به نزدیکی, کن... به نزدیکی خوشنواز سپهدار توران از او گشت بازیانی برقیت اه... جنگ گوریز کرده به, جنگ... به طرف جنگ اومده ولی گوریخ به این کاری بوده که از اشکانیان یادگار هست در جهان این مستقیم نرفته برای جنگ بجنگ، جنگیده باز پرشت کرده نه گرده. هنوز نجنگیده که آها فرار کرده بله. این یادگار اشکانیانه اون تو اشکانیان دیگه کنده نمی کندند چون این کار رو از روی آین مردانگی نمی دونستن کنده نمی نه نه کنده فقط پیرامون شهرها و دشها بود در اینجا در بیابون کنده کندند روشو گرفتن که دیدمش اه. هنان را بپیچید و بینمون پشت پس او سپاه هندر آمد درشجنی پشت سر او سپاه ایران سپاه پیروز هم بها برای پس باره پیروز شاخ همی راند پرخشم تا پیش راخ در افتاد با چند مرد بزرگان و شیران روز نبرد اوزان جاگه شاد دل خوشنواز به نزدیکی کنده آمد فراز برآورزان که کنده هرکس که زیست همون خاک بر بخشی وقت ایشان گریست. کسان که زنده بودن آهردن بیرون. ز شاهان نبود زنده جز که خواد. شدان لشکر و پادشاهی بباد. تمامه محصول شاهان شاهزادگان و بزرگان ایران بودن که همراه پیروز بودند شاهگاهی آمد به ایران سپاه از آن کنده و رزم پیروشا خروشی بر آمد کشور به درد از آن شهر یاران آزادمند مند بل. پادشاهی بلاش اون بخشتم اون افرود است که الان اولین افرود است روی چندی مستاد من اینو یادم رفت بود 404 دفتر چهارم روی 404 چهار چهار دفتر چهارم از شاهنامه بیرایش استاد فریدونی جاندی شما خودتون شاهنامه های خودتون رو میتونید پیدا کنید استاد هی اشاره میکنند بفهم بدانگه که پیروز شد سوی جنگ یکی پهلوان جست با رای و سنگ که باشد نگهبان تخت و کلاه به جوان را برد نیک خواه بدان کار شایسته بود سوفزای یکی نامور بود پاکی زرای سوفزای یعنی افزاینده شد همون معرضبان بود به زاولستان به بست و به غزنین و کابل چو چه آگاهی آمد سوف صوفزاز پیروز بیرای و بیگ رهنمای سفاه پراکنده را گرد کرد و زد کوس و از دشت برخاست کرد فرستادهی خاند شیرین زبان خردمند و بیدار و روشن روان اوزان پس فرستاد نزد بلاش که شاه ها. تو از مرگ غمبین مباش که این روز هر کس بخواهد چشید شکیبا و نام باید کذید زباد آمده گردد به دم یعنی کسی که با باد آمد با دم یا نفس یا باد بر میگه یکی داد خواند شو دیگر ستم کنون من به دستوری شهریار شدم کین پیروز را خواستار استوجین اجازه بیورو اسلحه‌ چو پر تزر بیا ز زاوورستون سوی مرد نویسنده نامه را گفت خیز که اومد سر خامه را رست خیز یکی نامه بنویس زی خوشنواز که ای بیخرد رو به دیفساز گناهکار کردی بیزدان تنت شود مویگر بر تو به کشتی شهنشاخ را بیگناه نبیره جهانشاه جهاندار بهرام شاه. من اینک به مرو آمدم که نمانم به ایتالیان تاجوگاه. اسیران آن خواسته هرچه هست که از آن رعزگاه آمده ست به همه باز خواهم به شمشیر کین به مرب آورم خاک توران زمین نمانم جهان را به فرزند تو. نه و خیش و پیوند تو. به فرمان یزدان ببرم سرت زخون همچون دریا کنم کشورت. فرستاده با نامه صوفزای بیامد چو شیر دلاغورد جای. شکسته شدان مرد جنگ آزمای. از آن پرسخون نامه صوفزای. همان مران نامره زود پاسخ نوشت سخون هرچه بودند رو خوب و زشت اینجا یک بخش بزرگی هفت بودند هست جنگی رو پیش میرون شکست رو پیوزیو اما این نیست من اشعاری هم پی بسته رو میخونم خودتون ببینم. همان در زوان مران نامره زود پاسخ نوشت سخون هرچه بودند رو خوب و زشت که از جنگ و پیکار و خون ریختن نباشد جز از رنج و آبیختن میبینید که گفتار با هم پیوست اس اینجا دو مرد خردمند نیکوگمان به تو زخت فرستیم هر دو روان. اگر باز جویی زراح ردی ردین بزرگی بزرگواری بدانی که آن کار بود ایزدی خونون بودنی بود یعنی تقدیر تقدیر گذشت بود یعنی گذشت کنون بودنی بود و بر ما گذشت خنوک آنکه گرد گذشته نگشت فرستم همه نزد سالار شاه سراپند برده و گنج و پیل و سپا. یعنی اون از سپا ایران به دست بازم برای تو میفرستم چو پیروزگر سوی ایران شوی به نزدیک شاه دل ایران شوی نباشد مرا سوی ایران تسیج تا از عهد بهرام گردن نپیچ چو بشنید پیغام اون سوفزای بیاورد لشکر به پرده سرای یعنی بزرگان لشکر را در جلسه و هم همراه باشند. فرستادر را گفت پیش سپاه بگوی آنچه بشنیدی از رازم چونین چون گفت با سرکشان سوفزای که امروز ما را جزین نیست رای که از ایشان از این پس نجوییم چند به ایران بریم بیران گذارم یعنی برگردن سپخ بی درنگ را خان پس پهلوان سخون گفت با او به شیرین زبان چنین گفت که این ایزدی بود و بس جهان بد گالت نگوید بکست وقت اصداد تیزین جنهیدی متأثر میشن کلوشون <تصفح> <تصفح> میگه سرفه میکنن این از حس حال این برنامه است و از چیزی که تو این مدت ما در خدمتشون بودیم احساس کردیم اگر احیا من دید دوست کردم به این خاطر بود و الان خوبی؟ بیاری <تصفح> <تصفح> ازم ازمی کنم خدمتون م... ب... اجازه میدید پرامه کنم شون پرامه شون زیاد دفهم. هستش دفهم. من بخوانم با درود بر استاد فریدون جنیدی چرا به انسان نیک کردار پارسا می گویند؟ و با سپاس امیر محمدیان از احواز پارسا کسی است که خودش رو در حقوق نگهبانی میکنه از انجام کارهای زشت بنابراین انسان نیکو رو می پارسا این رابطی با پارس نه نه نه نام اون نام هستش و پایانکه بعدی در مورد معنی واژه با سلام بر استاد فرهیخته استاد فریدون جنیدی با سپاس معنی واجی آپتین را بفرمایید آپتین در اوستاو بود آفای پدر فریدون بعد فای و آفای تبدیل شده به اص... اصفیان یا اس قومون امروزی ها این بود که آبتین دگرگون شده ای امروز اما در موتون سانسکریت من خوندم که اونجا هم هفتا آبتین رو میگن آبتر یعنی تغییر پیدا کرده په با چه جای خود شد تغییر داده در موتون سانسکریت یعنی سه هزار سال پیش بنابراین آبتین هم میتونیم بگیم اما معنیش خیلی خیلی مهمه که این معنیش محبوب میشه به داستان ایران م... شما چه, چه خبر راستیت سوالم کرده از مشغ است با می ب خودم از که سوال کردن که درباره آرششی کمانگیر برای من سخن بگویید استاد با سپاس پیام از بند در این بار من درود به بندر و اون مردمان سخت کوش. من در این بار چند بار سخن گفتم این خیزش ایرانیان برای بیرون, بیرون راندن تورانیان از خاک ایران اون کسانی که این خیزش رو کردن در کوهستان مانوش بودن یعنی همین کوهستان بزرگی که دمابند رو در بر میگیره تا این سو تا تهرانه میاد و از اون سو تبرستان اینها خیزش کردن و اصلاحی برترشون هم تیرو بود و تورانیان رو که اومده بودن و ایران رو گرفته بودن بیرون کردن از خاک خاک ایران بردن پشت رو آمودریا یا جیهون که من در همین پیشتر گفتم که آمودریا قبلا از یه شهری به نام چارجو میریخ به دریای مازند دارن بعدن ابو ریان اولین کسیست که, که گفته که بر اثر زمین لرزه و تغییر تحبالات زمین گذر آمودریا با طرف دریا, دریا خاره رفت که متاسفانه حالا امروز به ما میگن این دریا آرال درهای که از زمان باستان دریا خوارزم بوده. خب اینا رو راندن پشت آمودریا اما افسانه به این ترتیب دگرگون شد که یک شخصی به نام آرش آرش در زبان نبیسه ایرخشه ایرخش یعنی ایرانی اما اونه که ایرت شد یعنی ایرانی از بلندترین ارتفاع کوهستان های مانوش که دماوند باشه حرکت کردن و تورانیان را از خود کشور بیرون کردن این افسانه دلپذیر نبایدم بگیریم جشن تیرگان که میگیریم بازم تا تیروباد این دقیقه نخه هفرنگی که میپیشن و باید با باد میدن اینها این ای چیز دلپذیریه که در طول هزارها ساخته شده وگرنه آرش در حیقت ایرقشه یعنی ایرانیان و کوهستان مانوش هستند که با اصله برتر تورانیان را از خاک ایران بیرون راندند. درود بر استاد جنیدی چرا در پیش گفتار شاهنامه دوم را دویوم نوشتید رضا سقایان از اهواز. دوم سکونه عربی میشه چون اول بود بعد ایرانیان به قیاس اول دوم هم سومم سبوم هم نوشن. الان هنوز در کچه بازارها و این گذرهای کوهن تهران و خیلی شهرستان های دیگه دوم رو میگن دویوم سیوم رو میگن سیوم س... اول دوم سیوم به قیاس اول عربی نویشته شد که نادرسته سوال کردند که آیا در ایران باستان دانشمند زن داشتیم یا در کارهای بزرگ کشفری که در با کارهای بزرگ کشفری تا داشته باشن شاد باشید فیروزی فروز فیروزی خرق فیروز باشید ما در کتابی داریم به نام متکان که میبینیم که یک داور در یک خیابان یا کوچه ای درو گذر میکنه چند تا زن سر اون کوچه ایستاده بودن و از اون داور پرسید این سوال قضایی کردن یعنی در زمینه دادگری یه پرسشی کردن که او درمان نتونست اونش جواب بده مفهوم اینه که این زنان این دانش رو داشتن که بتونن این داور رو ببیتونن و پرسش یادش بکنن که نتونه جواب بده در رساله یادگار اندرز آتوفاد مانسمندان یه جمله خیلی جالبی است که میرونیم که نوشتی که زن و فرزند خود رو دور از فرهنگ مدار همه اینا نشانه اینه که دختران هم میاموختند منطقه همه چیز چون زیر رو شد دیگه ما خبر از این نداریم که زنان در چه کارهایی کمک نکردن بله. با سلام آیا درست است که در دوره ساسانی به موجب قانون اردشیر عوام حق آموزش نداشتند و چرا بهرام گور آن را لق نکرد دوستار شما احمد رضا کاکایی از احفاظ شاد باشید کاکایی این درست منطور آموزش مراحل داشت یعنی اینکه آموزش که در اون بتونن مطلب دینی رو بخونن عوستار رو بخونن و نامه بنویسن اینها اینها آزاد بود ما یک رسالهی داریم اندر عدو, وینکی، اندر عدو وینکی نامک نفیشتاری یعنی در آین نامه نویشتن پس میبینیم که مردم برای هم نامه می نویشتن. البته این نمونه،, نمونه برای هر کدوم نمونه گذاشته. ما وقتی که بچه بودیم پیشتر از ما کتاب های بود که مثلا نامه یک فرزند به پدر و درخواست پول از او این اینو به صورت انشاتون کتاب نمیشد که ما هم اگر بخوایم همین انشاب اون نزیر اون بنیشیم اکثلا از این انشا ها میدادن به بچه ها مم. بچه ها سعی میکردن یه چیزایی بنیشتن خب وقتی که پدر با با فرزندش نام, نام نویسی بوده یعنی سواد بوده در حد عادی نه در حد تخصص تخصص ویژه کسانی بوده که در حقیقت در رده های درس میخوندن مثلا فرض کنید که تخصص دانشگاهی امروز اما همه نمونه ها نشونه که سفارت کودک به فرهنگیان کسی را باید مایو ارجان مایو سنگان این ببینید در شاهنامه بودید سفارید کودک به فرهنگیان یعنی اینکه همه کودکان میتونستن برن این نبود وسیله طبقه خاصی یه طبقه خاص. آموزش تا اون حدی که بنویسن بتونن نامه بنویسه اینها برای همه بود مثل ما که تا دیپلم میگیریم حالا بخوایم تا دانش بخواد, بخواد. البته با گزینش بود دیگه آه. یعنی باید کسانی که پترشون دبیر بوده اینا هم بتونن دبیر بشن و خب بهرام گور خیلی کارا کرد از جمله اینکه بازگشت به آین زمان کییانیان و کشور را تقسیم کرد برای انجام اساسی زمان میخواد که خوب اونم دیگه زمان پیدا نکرد درود به روان کور و, و درود به روانبحران فرووش است که ساسانیان از حسادت او رو بهرام چوبینه نامیدند درود در استاد جنیدی نام لیدا به چه معنی است؟ آیا ریشه ایرانی دارد در زم واژه رستن به معنی رشد کردن است با راستگاری یا رستگاری ممنون؟ شاد باشید لیدا از نامهایی است که در زمان های این زمان های اخیر ساختن و بازی اما چیزی باستانی پیشی باستان ندا. رسم هم در ربستا بوده است. رعود یعنی پیکری که رویش پیدا میکنه ستم یعنی قوی بعد این در پالهوی شد روستم یعنی قوی پیکر و فرصه شود روستم یعنی از دقیقت رویش پیکر قوی در ثبت میکنه روستن منظورشون روستن, روستن, روستن بله بله بله روستن همون رویدن دیگه که روستم هم از همون ریشه است روستن یعنی رویدن بله. در عوضه بود رعوده و ر... یا یورش‌گاری، رستگاری، رستگاری, نه یا... رستگاری نیست. اون روستانی این رستگاری. این روستن یعنی رویدن یا اینکه راستن. راستن. اگر راستن باشه ماشه. اون با رستگاری یکی میشه. با. با. بعد اون وقت نمره آوی... ما من... درست میشه 19. چون شما خوندن نو... رستن دیگه من خوندن راستن اون وقت معلوم بود که نه. با رستگاری. گفتن روستن به منی رشد کردن. رستم در منی رست کرد رستم گرد. رست, رست, رست, رست قلی قلی من <تصفح> کم نکنه دوست دادت دخل. من بجرد رست خوددم چون اگه شد رستگاری میشد رستن <تصفح> باید کم نشد خدا رو شد با سلام و خدمت استاد دی و همه همکارانی که در برنامه پنجرهای رو به محتاب زحمت میکشند و این برنامه ناب ارزشمند را اجرا میکنند سپاسگذاریم از شما بی نهایت سپاس کاش می توانستم تقدیری شایسته از شما کنم سالم باشید این رو آزین از شهر استاد منزوی برای ما فرست دادن. و نوشتن لحظه های گفتن که آشغانو و مهربان برنامه رو اجرا می کنند و تنهایی های تلخ و شیرین مرا به برنامه های نا و نادر و پر می کنن. دروت بر آزین شاد باشید پیروز باشید البته در اندیشه انسان گاهی قم گاهی شادی همراه هست نمیشه که انسان بانه سنگ آهان نیست که یک نواخ بوده باشه خواهی نخواهی قم و شادی به همان اینطوری که سعدی گفته و امید شما هم با اندیشه در راه خدمت به فرهنگ ایران پیش برید و آینده روشن برای شما و همه فرزندان ایران آرز اومده با امیده خدا پرسیدن صدرا... به چه معنی است؟ را واجه عربی فارسی نیست پرسی و بازم است کس... من اگه بخوام بخونم که به صورت اصلا از ده داستان شاهنامه دور میشیم فقط درد میکنم 222-485 222-485 222-482-820 دویست و بیس پانسد و هشتاد و هشت دو صفر و شماله پیام که سی هزار پانسد و پنجاه و هشت سی هزار پانسد و پنجا و هشت شما میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از استاد فریدون جنیدی بپرسید خب استاد می فرموزید فرستادر خان پس پهلوان سهان گفت با او شیرین زبان خوش خوشنواز چون این گفت که این ایزدی بود و بست جهان بس نگوید ن یه کاک فرستید نزدیک من به پیش بزرگان این انجمند به تاراج و کشتن میازیم دست که ما بینازیم روی از آن از میگه که بفرستید این چیزایی که گرفتید یعنی کسانی که زنده ماندن برای ما فرستید و حالا پرد سرار چگوین رو بفرستید اگر این کار بکنید ما نهنتاراج کنیم نکشن یعنی دقیق سوزهایی با آئین ایران رفتار کرد در حال که پیرروز پی به اوینه ایرانی رفتار نکرده بود فرستاده هم در زمان گشت و گشتواز بیامد کوروزان بر خوشنواز به گفتان بشنید و زو گشتشاد همان قواب برداشت بند از قوبات فرستاد یک سر سوی خوسفسای به دست یکی مرد پاکیزهای همان که فروخشت بر سراش سپهبد و, و اسبم در آورد طاووس جهنگ گذر کرد پیروز شد او نامور مبد که کیقوباد یعنی سفزای برگشت بدونه جنگ چه آگاهی آمد به ایران زمین از آن نیک پی مهتر بافرین که از جنگ برگشت پیروز و شاد که شد از بند پای غباد بزرگامون فرزانه برخواستند پذیر شدن را بیاراستند بلاشون زمان تخت زرین نهاد کتاب برنشیند بران که غباد تمام طبام نسخ بر برو او رو بره سخت بتونیم بگیم من پیشنهاد کردن که برام باید بگیم به شهرم در اون صوفزای بزرگان برفتن اکثر سر زجای زراحن در ایوان شاه آمدن گشاده دل و نیخاخ آمدن به فرمود خان بیا راستند می و رود و رامشگران خواستند همه چامگو صوفزا راستدود اگر در جنگ های باستان بیا بیارید راستند وقتی که پیروز برمیگشت اون وقت رستم رو با در چامگور کارهای رستم رو های رستم به نای و برود, برود هم میخواند و پهلوانی سرود یعنی کارهای پهلوان رو سرود میکردند. و آهنگ میساختن اون آهنگ رو در اون جلسات میخوندن این کاملا سفزای فرزند رستمه هم از زابلستان و کابلستان و هم اینکه که کار رستمانه کرده و برگشته خونیاگرانم کاری میکنند برای او که برای رستم میکردن نیاکانشون در زمان باستان بله. همه چاموگو سورسا را ستود و بربت همه رزم توران سرود مهان را همه چاش بر سورسای از او گشته شاد و به دود آده رای بله. خب من پرمک های زیادی از شما اومده که پرسیدید که می میتونید با استاد صحبت کنید و تلفن بنیاد نیشابور رو خواستید ت میکنم که تلفن بنیاد نیشابور هستش. هشتاد و هشت نود و شش آرام ببخش هشتاد و هشت ود و شش، بیست هفت هشتاد و یا تلفن بنیاد نیشابور پس هشتاد و هشت ود و بیست هفت هشتادو چهار. دورنگار و فکس بنیاد هست. بونودنش آبی هستش. هشتاد و هشت. نهادوشش. بیست و دو. چهلوسه. چهل آدرس اینترنتی پایگاه تلورسیانی بونودنش آبی هستش. دبیدیو تیره نشابو میشهید از این تعریف با بنیاز بهتوبات بر کنید و ازات تریات استاد جنادی استفاده کنید در جللسات شاهرممهخانه شرکت بکنید و مطلئی بودیم خواستم عرض کنم خدمتون تلفن های مام که عرض کردم خدمتون موسیوی میشیم در خدمتون هستیم میفرمایید دوستان پادشاهی قوبات 43 سال بود شب بر تختنش از فرخ قوبات کلاه بزرگی به سر بر نهاد بیام تاج بر برای تاجور سوفزای سوفزای آمد نزد پادشاه به واسطوری بازگشتن به جای همه پارس وروح شده چون رهی همه بود جز نام یعنی همه ایران را دوست داشتند همه چیز براش ممکن بود فقط نام شاهنشان شا نبود بدان بود که من شاه بنشاندم به شاهی برو آفرین خاندم که از من کسی زشت گوید بدوی، برای سرد گوید براند ذروید چون سوفزای در حقیقت این میدونست این حیله ها و نیرنگ هایی که در دربار مخصوصا پیرامون شاهان به ویژه شاهان خودکا خودخواه خودکامه خیلی خیلی زیاد هست اینه این چیزایی که مرسومه در همه جوها بوده که پیرامون افراد قدرتمند یکی به آدم در حقیقت ماجرد روی درخوی خودخواه بدخواه برای دیگران جمع میشن این خاصیتش اینه اما صحوصای با اینکه اینو میدونست است بدان بود که من شاه بینشوندم به شاهی برو آفرین خواندم که از من کسی زشت گوید بدوی و را سرد گوید براند زروی همین باز جستی هر کشوری هر نامداری و هر محتری اما متسفانه کنیم بر بدخواهان دربار قوات را بر هر هران کس که بود رازدار قوات بروبر سخونها همی کرد یاد که از پادشاهی به نامی بسند چرا کردی شهری شهری آره بلند گنج تو آکنده تر گنج او بباید گسست از جهان رنج او یعنی بود از بنیفه ببری بکشش چنین گفت گر من فرستم سپاه سر او بگردد شود رازم خواه کند هر کسی یاد کردار اوی نهانی ندانند بازار اوی یعنی اون که در ظاهر نشون میده باتن شد از اون تشخیص نمیدن. ندارم از ایران یکی رزم خواه که زیده شود پیش او با سپاه به دو گفت شاپور که شهریار دلت را به دینکار رنجه مدار تو را نام و فر و نژاد است و پشت یکی نامه باید نوشتن درشت بگویی که از تخت شاهنشهی مرا بهره رنج است و گنج تهی توی باش خواه و منم با گناه یعنی تو باشش مردم میگیری گناهش به گردنم همیفته من خواهم که خانیم مرا نیست شاه فرستادم اینک یکی پهلوان زکردار تو چند باشم نوان نوان یعنی نولان گریام چون نامه بدین گونه باشد بدوی چون من دشمن و لشکری جنگ جو. یعنی این رو شاپور داره میگه اگر نامه این تو و من جنگ جوی باشم با یک لشتر نمایانم که بر هم زند نیز چش نگویم سخن پیش او جز بخاش.